شوهر. از این حوادثی که شهر دادیم تقریبا دو سال گذشت در یکی از روزهای زیبای تابستان در واگن یکی از راه آهن‌های خودمان که تازه افتتاح شده بود آقای ولچنی را ملاقات میکنیم او برای دیدن یکی از دوستان خود و نیز برای مقصود دیگری که خوشایند بود به عدسا میرفت با پادرمیانی این دوست امید داشت زن بسیار جالبی را ملاقات کند که مدتها ها بود میخواست با او رابطه وسیعی برقرار سازد. بی اینکه در جزئیات وارد شویم همینقدر قدر میگوییم که بسیار تغییر یافته بود یا بهتر بگوییم به طور قابل ملاحظه‌ای خود را پاک و منزه کرده بود. از تمام این خاطره و استراب ها که از مرضش ناشی میشد بیش از یک سرفکندگی پنهانی که از آگاهی به پستی گذشتهش سرچشمه می‌گرفت، چیز دیگری حس نمی‌کرد. چون مطمئن بود دیگر هرگز تکرار نخواهد شد و هیچ کس از آن با خبر نخواهد گردید، اندکی او را تسلی می‌داد. راستی هم تمام پیوستگی‌های خود را با آن دور رها کرده بود. در آن هنگام دیگر اهمیتی به لباس‌هایش نمی‌داد و بیشتر خود را پنهان می‌کرد و اینها را محققا مردم درک می‌کرد. اما به زودی از این کارها هم دست برداشت دوباره با اطمینان زیادی در مجامع ظاهر شد و همه اختفای آنی را بخشیدند آنهایی که حتی دیگر به او سلام نمیکردند اول بار او را دوباره شناختند و به اینکه سوالات بیجایی از او بکنند دست خود را به طرفش دراز کردند اینطور وانمود کردند که در این مدت برای کارهای خانوادگی که مربوط به هیچکس نیست غیبت کرده بوده و تازه حالا برگشته است دعوایش که به نفعش تمام شده بود مسلما علت این تغییر بجا و مناسب بود ولچونینف شست هزار روبل به دست آورده بود مسلما این پول مبلغ زیادی نبود اما به این پول احتیاج شدیدی داشت در همان لحظه دوباره خود را روی زمین محکمی یافته بود پس از لحاظ اخلاقی کاملا خوشنود بود. و مخصوصاً میدانست که آخرین دارایی خود را مثل یک احمد حیف و میل نمی کنن. آنطور که با آن دو ثروت اولییش کرده بود و میدانست که این پول تا آخر عمرش برای او کافی خواهد بود. گاهی که در اطراف خود و در همه روسیه چیزهای خارق‌العاده و باور نکردنی را که پیوسته رو به تکامل بود میدید میاندیشید برای من چه همیتی دارد اگر بنای اجتماعی مردم فرو ریزد. زد. بگذاران ها هر که میخواهند زیر گوش ما وزوز وز کنند. بگذاران ها مردم و افکار را از بیخ عوض کنند. اما من این نهار گوارا و لذیذ را که الان جلوی رویم است همیشه خواهم داشت. پس من برای همه چیز آمادم. این فکر که از دلپذیری به مرحله لذت رسیده بود، کم کم تمام وجودش را فرا گرفت و کاملا او را تغییر شکل داد. حتی از لحاظ جسمانی تغییر کرد. رنگ رخسارش بیشتر سرخ و سفید شد. چینهای کوچک موزی داشت در اطراف چشمان و روی پیشانیش زیاد میشد. تقریبا از بین رفت و حالتی بشاش، باز و موقر داشت. با کمال راحتی در یک واگان درجه یک نشسته بود و فکری دلپذیر در مغزش جولان می کرد. در ایستگاه بعدی راه آهن منشعب می شد و تازه ای سمت راست می رفت. اگر خط اصلی را ترک می کرد و به سمت راست می رفت، در ایستگاه بعدی می توانست خانومی را ملاقات کند. آن خانومی را که تازه از خارج برگشته بود و اکنون در انزوای خود در آن شهرستان فرو رفته بود. و این امر برایش بسیار کسل کننده بود اما برای ولچانینوف بسیار دلپذیر بود به نظرش می آمد که امکان دارد وقت خودش را در آنجا مثل عدسا به خوشی بگذراند و همین که آنجا برسد هیچ چیز را از دست نخواهد داد اما هنوز مردد بود و نمی تصمیم بگیرد منتظر تصادف بود دیگر ایستگاه داشت نزدیک میشد و دیگر نمیشد منتظر تصادف بود در این ایستگاه ترن چهل دقیقه توقف داشت و مردم نهار میخوردند یک جمعیت بیحوصله و شتاب زده در برابر در سالن انتظار مسافرین درجه یک و دو مثل معمول به یکدیگر فشار وارد میآوردند و همانطور که این واقعه اغلب اتفاق میافتاد افتضاحی برپا شد خانم بسیار زیبایی که از واگان درجه دو پایین آمده بود اما طرز لباس پوشیدنش زیاد برای یک خانم مسافر مناسب نبود با دو دستش افسر ریزه بسیار جوان و بسیار زیبایی را که سعی می کرد از او فرار کند تقریبا میکشید. افسر ریزه مست بود و آن خانم که شاید یکی از بستگان مسن نان افسر بود او را رها نمیکرد. حتما می که یک راست به طرف بوفه برود. با وجود این آن افسر در جمعیت به تاجر جوانی تنه زد که او هم زیاد نوشیده بود و هر گونه حجب حیایی را از دست داده بود جوانک تاجر دو روز میگذشت که در این ایستگاه بود میآشامید و با رفقای بشاشش پول خرج میکرد و موفق نمیشد بلیط ترنی را که باید او را به نقطه دوردستی ببرد بگیرد بالاخره نظایی برپا شد افسر فریاد میکشید تاجر سوگن میخورد خانم درمانده شده بود و آن افسر را میکشید و با لحنی تزر و آمیز میگفت میتنکا میتنکا این واقعه راستی برای تاجر جوان افتضاح آور جلوگر شد درست همه مردم میخندیدند خودش حس می کرد که بیش از اینها به او تحقیر شده است زیرا که خدا میداند برای چه این واقعه را توهینی به اخلاق تلقی می کرد و با لحنی میخته به سرزنش از صدای زنگدار آن خانم تقلید کرد و گفت به من نگاه کن میتنکا حتی جلوی مردم خجالت نمیکشند. تلو تلو خوران به آن خانم که خود را روی صندلی انداخته بود و آن افسر را نزد خود نشانیده بود نزدیک شد. با حقارت به آنها نگریست و با لحنی لکنتدار گفت ای زن کسی و شلخته. ای زن کسی فشلخته خوب بیا به روشادی آن خانم فریاد گوش خراشی کشید و در حالی که امیدوار بود کسی به کمکش بیاید با نگاهی ما تمزا به اطراف خویش نگری خجالت خجارت میکشید و می ترسید. از طرف دیگر آن افسر میخواست با تاجر گلاویز شود فریاد میزد و از جا پرید اما سر خورد و دوباره روی صندلی افتاد در اطراف آنها صدای خنده چند برابر شد، اما هیچکس کس مداخله نمی کرد. فقط ولچانینوف به کمک آنها آمد. ناگهان یقه تاجر را گرفت، او را روی پاشنه پایش چرخاند، و تا پنج قدمی آن خانم وحشت زده به راند با این کار به ماجرای افتضاح آمیز خاتمه داد. تاجر جوان به واسطه آنتکان شدید و هیکل قوی و با حیبت ولچانینوف کاملا خود را باخت. دوستانش او را با شتاب بردند رفتار بزرگمنشانه این آقایی که با زرافت لباس پوشیده بود در آن اشخاص ساده و خونسر تأثیر زیادی کرد خنده ها شد آن خانم که درمز شده بود و چشمانش پر از عشق بود با این بسات خاطر سپاس کرد آن افسر جویده جویده گفت تشکر می تشکر میخواست دستش را به سوی ویلچانی دراز کند، اما بیشک رأیش تغییر کرد و دراز به دراز روی نیمکت ها خوابید. آن خانم دستهایش را به هم پیوست و با سرزنش گفت، میتن که؟ از این واقعه و از آزا و احوال خوشنود بود. به خانم علاقه پیدا کرده بود. ظاهرا زن برجوهای متمولی بود که لباس مجللی بهتن داشت که بیسلی از آنها ویدا بود. رفتارش کمی مسخر آمیز بود تمام چیزهایی را که برای جلب نظر یک آدم بیکار پایتخت، تخت که درباره زنها نظر مشخصی دارد لازم بود در خیشتن جمع کرده بود خانم با صدای لرزانی از شوهرش که ناگهان هنگام خارج شدن از قطار گم شده بود شکایت می کرد و او را باعث این جنجال می دانست می گفت همیشه وقتی وجودش لازم است ناپدید می شود. آن افسر جویده جویده گفت او احتیاج داشت دوباره خانم دستهایش را به هم پیوست و گفت او میتنکا ولش نمی‌نو فکر کرد شوهر چطور میپذیرد؟ اسمش چیست من می‌روم پیدایش می‌کنم افسر با صدای دورگه ای جواب داد پال بالیچ ورچانی با پرسید شوهر شما اسمش پاول پافلوویچ است. و ناگهان همان سر تاسی را که می شناخت بین خانم و او پدیدار شد. در یک لحظه آن باغ زاخلی ها آن دخترهای بیگناه و این سر تاس مزاحمی که دائما بین او و ندیش دافد حایل میشد در نظرش مجسم شد. زن با عصبانیت فریاد کشید. بل آمدید او خود پاول پاپلوویچ بود مثل اینکه شبهی دیده است از تعجب و وحشت خوشگش زده بود به ولچانی نف نگاه می کرد به قسمی بهتش زده بود که تا چند دقیقه از آنچه که زن رنجیده و متغیرش با تندی شعر می داد هیچ چیز نفهمید یکه خورده بود و در یک آن به وخامت موقعیتش پی برد و از گناه خود و از آنچه که می تنکا کرده بود و از آنچه که این موسیو معلوم نبود چرا خانم ویلچانینوف را این طور می نامید. یعنی فرشته نگهبان و نجات دهنده آنها، هنگامی که او در اینجا نبوده است و لازمش داشتند انجام داده است، با خبر شد. ویلچانینوف از ته دل خندید و با حرکت دوستانه و حمایت کننده با دست راستش شانه های پاول پاولویچ را که لبخند خفیفی بر لب داشت گرفت و به خانم که متعجب شده بود گفت ما دوست هستیم، دوستان دوره کودکی آیا هرگز از ولچانینوف با شما صحبت نکرده است؟ زن با بحت بسیار گفت نه، هرگز خب، دوست بیوفا، زن خود معرفی کنید پاول پاولویچ گفت ایشان آقای ولچانینوف هستند، لیپوچکا اما ناگهان با تشویش کلام خود را برید. زن قرمز شد و نگاه غضبناکی به او کرد. ظاهرا برای اینکه او را لیپاچکانا میده بود. تصورش را بکنید، حتی عروسیاش را به من اطلاع نداد و مرا دعوت نکرد. اما شما، المپیادا. پاول پاولویچ زیر لب گفت: سمیونوفنا. آن افسر که در تمام این مدت خوابیده بود ناگهان تکرار کرد: سمیانونا اولمپیادا سمیانونا او را به خاطر من و به خاطر این برخورد دوستانه ببخشید شوهر خوبی هست و به شانه پاول پاولویچ دست دوستانه ای زد پاول پاولویچ کوشش کرد خود را تبرئه کند عزیزم من فقط یک دقیقه دیر کردم فوراً لیپوچکا گفت و زن خود را خجلت زده کردی. وقتی لازم است باشید هرگز نیستید اما وقتی که لازم نیست هستید آن افسر با او تکرار کرد وقتی که لازم نیست وقتی که لازم نیست وقتی که لازم نیست لیپچکو از خشم و نفرت داشت خفه میشد فهمید که این حرف در برابر ولچانینوف مناسب نبود قرمز شد اما نتوانست خود را نگاه دارد از زبانش پرید و گفت جایی که لازم نیست بسیار بیدار و حشیار هستید بسیار بیدار و حشیار و میتنکا ناگه ناگهان با هیجان تکرار کرد زیر تخت خواب پی اشاغ می گردن. زیر تخت خواب جایی که لازم نیست و او نمی توانست با میتنکا هیچ کاری بکند از طرف دیگر قضیه به خوبی پایان یافت و آشنایی کامل حاصل شد پاول پاولویچ را فرستادن قهوه بیاورد اولمپیادا سمیانوونا برای ولچنینوف شهر داد که آنها از شهر او که محل خدمت پاول پاولویچ هست میآیند و اکنون به شهر خود که در چهل ورستی اینجا واقع است میروند تا دو ماه در آنجا بگذرانند. آنها در آنجا خانه بسیار زیبایی با یک باغ دارند و از مهمان خود پذیرایی می و همسایه های بیشماری دارند و اگر آلکسی وانویچ این لطف را درباره آنها بکند و به محل انزواگشان بیاید او درست مثل فرشته محافظ خود از او پذیرایی خواهد کرد زیرا بیوحشت و استراب نمی تواند تصور کند که چه اتفاقی می اگر بالاخره غذایایی که اتفاق افتاد خلاصه مثل یک فرشته محافظ از او پذیرایی خواهد آن افسر با هیجان روی این کلمه تکیه کرد و یک نجات دهنده و یک نجات دهنده ولچنینوف با ادب سپاسگذاری کرد و جواب داد که همیشه برای خدمت حاضر است و آدم آزاد و بیکاری می باشد و این دعوت المپیاد از بسیار محبت آمیز است و فوراً صحبت خوشمزه ای را شروع کرد که در آن با مهارت دو یا سه تاعرف و تملق گنجانید. لیپوچکا از خوشحالی قرمز شد و همین که پاول پاولویچ برگشت، با شادی به او اطلاع داد که الکسی ایوانوویچ خجالت کشیده است دعوت او را بپذیرد و قول داده است که تا یک هفته دیگر بیاید و یک ماه نزد آنها در ییلاق بماند. پاول پاولویچ که دست پاچه شده بود لبخندی زد و چیزی نگفت. اولمپیادا سمیونوفنا چشمانش را طرف آسمان کرد و شانه‌های کوچکش را بالا انداخت. از هم جدا شدند. دوباره اظهار تشکر. فرشته محافظ میتنکا و بالاخره پاول پاولویچ زنش و آن افسر را برد و در واگن گذاشت. ورچنینوف سیگاریا آتش زد و روی بارانداز به قدم زدن پرداخت. می دانست که پاول پاولویچ دوباره خواهد آمد و تا هنگام حرکت پرگویی خواهد کرد. همینطور هم شد. تقریباً بلا فاصله پاول پاولویچ پدیدار شد. چشمانش و همه قیافش مستربانه سوال می کردند. دوستان آرنجش را گرفت و او را به طرف نیمکت نزدیکی برد و نشانید و خودش هم کنار او نشست. و سکوت کرد. میخواست ابتدا پاول پاولویچ صحبت را شروع کند یک دفعه به اصل مطلب پرداخت و با زبان گفت که اینطور شما پیش ما خواهید آمد؟ من میدانستم و تغییر نکرده است ولچانیناف به خنده افتاد یعنی ممکن است که شما و دوباره دستی به شانی اوزه یعنی ممکن است که شما جدا باور کرده باشید حتی برای یک دقیقه من بتوانم نزد شما بیایم تا چه رسد برای یک ماه <تصفيق> پابل پاولویچ با خوشحالی تکانی خورد و در حالی که سعی نمی کرد شادی را پنهان نگاه دارد گفت خوب بنابراین نخواهید آمد؟ نه نخواهم آمد نخواهم آمد ولچنیوف میخندید بسیار از خودش راضی بود گرچه نمیفهمید چرا این موضوع به خصوص اینقدر به نظرش مضحک میآید اما بیش از پیش ماگل بود بخندد یعنی ممکن است یعنی ممکن است خالی از شوخی گفتید پاول پاولویچ در حالی که این را میگفت از جا پرید می و منتظر جواب ولچانینوف بود همین الان به شما گفتم که نخواهم آمد چه آدم مسخره هستید اما چطور من اگر اینطور باشد به علم پیدا سمیانونا چه بگویم وقتی یک هفته گذشت منتظر شما شد و شما نیامدید؟ چه مشکل بزرگی به او بگویید که یک پایم شکسته است یا چیزی شبیه به این؟ پاول پاولویچ آهسته با لحنی شکف آمیز گفت حرف مرا باور نمی کند. و با سختی سرزنشتان خواهند کرد ولچانینوف همانطور می خندید. اما رفیق بیچارم میبینم که جلوی زن زیبایتا میلرزید پاول پاولویچ بیهوده کوشید که بخندد از اینکه که از آمدن خودداری میکرد مسلما بسیار خوشحال بود اما از اینکه با لحنی خودمانی از زنش صحبت میکرد خوشش نمیآمد. گیافش در هم فرو رفت و ولچانینوف ملتفت شد در این مدت برای دومین بار زنگ زده بودند از دور صدای ریز و مضطربی به گوش می‌رسید که پاول پاولویچ رامینامید. پاول پاولویچ مضطرب شد اما به آن صدا جواب نداد. انگار هنوز چیزی را از ولچانینوف انتظار داشت. بیشک خواست یک بار دیگر از او قول بگیرد که نخواهد آمد. ولچانینوف مثل اینکه اضطراب پاول پاولویچ را درک نکرده باشد پرسید: اسم زمان دختری زن شما چیست؟ پاول پاولویچ در حالی که گوشش را تیز کرده بود و به طرف واگنش نگاه های استاضاب آمیزی می کرد جواب داد. دختر اسخفم است: آه میفهمم پس برای زیواییش؟ پاول پاولویچ دوباره در هم شد و این میچن چه کار است؟ آه او یکی از بستگان دور من است پسر دختر اموی مرحوم گلوب چیکوف. به واسطه ای رفتار منگینش درجه اش را گرفته بودند اما اکنون درجه اش را دوباره دادند زندگی اش را ما اداره می کنیم. جوان بدبختی است ولچنینوف اندیشید بسیار خوب بسیار خوب همه چیز مرتبه است و صحنه آماده شده پاول پاولویچ دوباره صدای دوری از واگن آمد اما این بار صدا خشمگین بود صدای گرفته دیگری تکرار کرد پل پلیچ پاول پاولویچ خواست بلند شود اما ویلچانینوف محکم آرنجش را گرفت و او را متوقف کرد میخواهید بیایم و برای زنتان نکایت کنم که چگونه میخواستید سرم را ببارید؟ ها؟ پاول پاولویچ وحشت زده فریاد کشید چه میگویید؟ چه میگویید؟ خدا حفظتان کند. دوباره صداها فریاد کشیدند. پاول پاولویچ! پاول پاولویچ! بسیار خوب. بروید. بالاخره ولچانیناف او را ول کرد. از ته دل میخندید. پاول پاولویچ تقریباً با حالت نامیدی یک بار دیگر زمزمه کرد. خب پس شما نخواهید آمد؟ و مثل سابق دستهایش را در روی سینه به هم پیوست قسم میخورم که نخواهم آمد بدوید و الا بدبختی بار خواهد آمد و با حرکتی ماهرانه دستش را به طرف او دراز کرد دستش را دراز کرد و از جا پرید نه تنها پاول پاولویچ دستش را نگرفت بلکه دست خودش را هم عقب کشید صدای زنگ سوم در فضا پیچید آنگاه در یک آن چیز عجیبی واقع شد هر دو انگار کاملا عوض شدند ورچنینوف که یک دقیقه قبل آنطور از ته دل می‌خندید ناگهان چیزی در اندرونش لرزید و از هم گسیخت با خشونت محکم شانه پاول پاولوویچ را گرفت رنگ لبهایش پریده بود و میلرزید و زیر لب زمزمه می‌کرد اگر من این دست را به سوی شما دراز می‌کنم و کف دست چپش را که در آنجای باریدگی درازی دیده میشد به اون نشان داد است آن را بگیرید پاول پاولویچ هم رنگش پرید و لبهایش میلرزید ناگهان یک آشفتگی درونی صورتش را در هم فشرد و با لکنت زبان گفت و ل... لیزا و ناگهان لبها و گونه ها و چانش لرزید و اشک از چشمانش سرازیر شد ورچنینوف در برابر او مبهوت ایستاده بود از واگن فریاد برخواست پاول پاولویچ پاول پاولویچ انگار کسی را سر میبارند صدای سوتی به گوش رسید پاول پاولویچ به خود آمد دستهایش را تکان داد و با تمام قوا به طرف واگن دوید قطار به راه افتاده بود اما فرصت یافت که خود را به آن بیاویزد و به واگن پرتاب کند ولچانینوف در آن ایستگاه تا عصر ماند. و بلیت قطار بعدی را خرید و با خط مستقیم به راه خود ادامه داد برای ملاقات خانمی که در یه از تنهایی کسل شده بود به طرف راست نرفت راستی حاصلش را نداشت اما بعدها بر این موضوع تصف خورد